بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم نوود اختلاف المجتهدین فی مسألة على قولين ما بحث اجماع رو خوندیم و خوندیم که اجماع بر دو نوع سریح و سکوتی هست امروز میخویم اگر مجتهدین در یک مسألی فقط دو نظریه داشتند در یک مسألی فقط چند نظریه وجود داشت؟ دو نظریه آیا؟ این دو نظریه به شکل زمینی به ما میگند که اجماع بر این دو نظریه وجود داره یا نه آیا نظریه سوم دادن جائز است یا نه این سوالات رو پاسخ میده میگه اذا اختلاف المجتهدون في عصر من العصوری في حکم مسئلت على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث ام لا یجوز می زمانی که اختلاف کردند مجتهدین امت در اسری از اسرها در حکم مسئله بر دو نظر، با هم دیگر اختلاف نظر کردند دو نظر داشتند. آیا جایز است که نظری سوومی رو داد یا جایز نیست؟ ذهب الأكثرون إلى المنع من احداث قول ثالث لان حصر الاختلاف في قولین اجماع ذمّي على الله قول آخر في المسأله الله قول آخر في المسأله، فيكون القول برأين ثالث خرقا لجمع قد تم و هذا لا يجوز. ده قدم میگه اکثریات گفتند که جائز نیست قول سومی داد نظریه می رو داد خب بریم جلوتر تقیق کتاب فعلا بعدا خودتون بحث کنید زیرا حسر کردن اختلاف در دونه نظریه خودش یک اجماع زمنی هست که در مسئله قول دیگه ای وجود ندارد موقع تو یک ای دو نظریه وجود دارد، این یک اجماع زمینی هست که پس در این مسئله نظریه دیگری وجود ندارد میگه. پس در نتیجه نظریه سوم دادند. رأی سوم دادند در این مورد شکستن اجماعی هست که قبلا بسته شده است. و این هم جایز نیست. پس این نظریه اکثریت هست. و قال البعض بالجواز مطلقاً بازی دیگر گفتن لا جایزه اگر گاهی که نظری وجود داشته باشه این به این معنا که اجماعی وجود نداره پس نظریه سوم دادن مشکلی نداره و حجتهم حجت این گروه دوم چه است اما انه ما قد حصل اختلاف فی مسألة بین المجتهدین فهذا دلیل القاطع على الا اجماع فی المساله وحیث لم يحصل اجماع فلا مانع من احداث قول ثالث و رابع و اکثر، لانه او لا یخروق اجماع. این گروه دوم دو میگند همینی که اختلاف کرده اند خودش دلیلی قاطع بر این هست که اجماع در مسئله وجود ندارد و زمانی که هم اجماعی حاصل نشده است، پس هیچ مانعی از نظر سوم یا چهارم یا بیشتر دادن وجود ندارد. و این خرق اجما نیست و این شکستن اجماع، بس گروهی گفتند اگر دو نظریه وجود داشت دادن نظر بعدی و جایز نیست و گروه دیگر گفتم نه موقعی که مشتهدین اختلاف نظر داشتند در یک ای بر دو نظریه این به این معنی است که اینجا آقا اجمای وجود ندارد اما ببینیم نظر گروه سوام چی میگن واختار فريق التفصيل قروه ديجار قائلة بتفصيل هالسند بتشكل وخلاصته نزري التفصيلية هنا خلاصش هنا إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه لأنه يعد خرقا لإجماع قائم لإجماع قائم وهذا لا يجوز أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئا متفقا عليه بين المختلفين فيجوز إحداث قول آخر في المسألة لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة دقت داشته باشید این یک کمی نیاز به دقیق داره میگه گروه دیگر در این که جایز از نظریه سومی داد یا نه تفصیل قائلند به چه شکل؟ اینها میگن زمانی که بین اون نظریهی که درش چی وجود داره؟ اختلاف وجود داره و خلاصه اذا کان بین المختلفین قدر مشترک متفق علیه قبلا من خوندم مختلفین اما مختلفین هست این چه مختلفین هست میگه زمانی که بین اون دو چیزی که درش اختلاف وجود داره قدر مشترکی وجود داشت چی وجود داشت؟ که بر اون, بر اون قسمتش اتفاق نظر وجود داشت با مثال اینو البته پایین واضح میکنه میگه اینجا دادن نظریه سوم که مخالف بر اون قسمتیه که برش اجماع وجود داره بر اون قسمتیه که برش وجود داره دادن نظریه سوم جایز نیست زیرا اینجا همون شکستن اجماع حساب میشه و شکستن اجماع جایز نیست میگه. اما زمانی که قول سیبوم رؤیا قسمتی نباشه که برش اجماع هست، برش چی هست؟ اجماع هست. ایرادی نداره که نظریه دیگه ای داد، زیرا در این حالت مخالف با اجماع نیست. خب. و هذا القول هو الراجح این نظریه سوم نظریه راجحه لأنها ينظر إلى حقيقة الإجماع فإذا وجده في جزئية لأنها خدا حقيقة إجماعه در نظر قرفته خدا حقيقة تجيره در نظر قرفته؟ إجماعه زماني كي إجماعه در يك جزئي يافته اگر كي كون مسألة درش اختلاف هست ولی در يك قسمت يزو المسألة اختلافی بها إجماع داره نظرشون يكيه كي باب مثال واضح مشيه میگه در اون قسمت دیگه دادن نظریه سوم جایز نیست چون مخالف با اجماع هست و زمانی که هم مخالف با اون قسمت اجماع نباشه هیچ مانعی از دادن نظریه جدید نیست و دادن نظریه جدید زمانی ممنوع هست که مخالف با چی مخالف با اجماع باشه مخالف با اجماع باشه, مخالف با اجماع باشه ولی توضیح حاضر رای ندربو بعض الامثله میگه برای توضیح دادن این نظریه سفو چند تا مثال میاری؟ با مثال راحت اینو واضحش میکنه شما دقت داشته باشید اختلاف اختلفت اصحابتو اختلف في ميراث الجدی مع الاخوت الاشقاء او الابع على قولین دقت داشته باشید تا مثل رو بفهمید صحابه اختلاف نظر کردن در رابطه با ميراثه پدر بزرگ زمانی که میت هم پدر بزرگ داشته باشه هم اخوه داشته باشه برادری داشته باشه آه؟ برادر خواهر داشته باشه دقت داشته باشید زمانی که شخصی فوت کرد هم پدر بزرگ داشت هم برادر داشت هم پدر بزرگ داشت و هم چی داشت؟ برادر داشت حالا برادرش چه؟ شقیقه باشه چه پدری فرقی نمیکنه اینجا صحابه دو نظریه دارند اختلاف کردن بر چند قول؟ بر دو قول الاول نظریه اول صحابه چه هست؟ بعضی صحابه ان الجد و ال... اخوته ویستتأثر هو وحده بالمراث ویستتأثر هو هو وحده بالمراث الیم یکن معهم احدون غيرهم. نظری اولین که پدر بزرگ برادران رو محجوب میکنه یعنی برادران ارسی نمیبرند اگر فقط در مسئله پدر بزرگ بود با برادران فقط میراثو کی میبره؟ فقط پدر بزرگ میراسو میبره برادران ما یه چیزی نمیبره این نظریه اول هست اثانی انالجده یعنی تو ماله خوتی ولا احجور نظریه دوزوم صحابه که بعضی این نظریه رو دادنی هست که نه پدر بزرگ هم ارس میبره برادران هم چکار میکنند ارس میبرند و پدر بزرگ برادران و محجور خب این درش چی وجود داره؟ اختلاف وجود داره ولی روی بعضی از قسمت این مسئله با هم دیگه اتفاق نظر دارند صحابه با هم اختلاف نظر دارند گروه میگند حاجب میکنه، ارس نمیبرند برادران همراه با پدر بزرگ، گروه دیگه میگند چی؟ ارس میبرند ولی روی قسمت نظرشون با هم مشترکه خدش میگه کدوم قسمت؟ فالقدر المشترك المتفق عليه بين أصحاب هذا القولين هو ضرورة ارسال جد مع الاخوة والخلاف في حجبه لهم او عدم حجبه. یک قسمت با هم اتفاق نظر دارند. در کدوم دار قسمت؟ دریم قسمت که پدر بزرگ میبره. پدر بزرگ در هر صورت میبره فقط در این اختلاف دارن که آی برادران همراه پدر بزرگ میبرند یا نمیبرند پس در کدون قسمت به هم نظرشون متفقه؟ در قسمت که پدر بزرگ میبره فقط در این قسمتش اختلاف دارن که آی برادران همراه پدر بزرگ میبرند یا نمیبرند در این قسمت که پدر بزرگ اینا رو محجوم میکنه یا نمیکنه ف احداث و قول ثالث بعدم فل مال اخوا قالو لا یادوس دیکت چقدر قشنگ میگه نظریه سومی دادن که بیاد بگه پدر بزرگ ارس نمیبر جایز نیست نظر دادن یک نظریه سومی بیاد بگه پدر بزرگ آقای اصلا ارس نمیبره جایز چرا چون روی این قسمت اجماع وجود داره صحابه روی این قسمت که پدر بزرگ ارس نمیبره چکار کردند اجماع کردند کدوم قسمت اختلاف داشتند. برون قسمتش که آیا برادران همراه پدر بزرگ می برند یا نمی برند با لی خرقه الاجماع السابق و هو ضرورته توریث الجد مال اخوه و هو القدر المتفق عليه بین المختلف این میگه زیرا اینجا اجماع شکسته میشه چون اولایی که گفتن برادران می برند و اولایی که گفتن نمی برند در این قسمت که پدر بزرگ می با هم چی داشتن؟ اجماع داشتن پس روی این قسمتش نمیشه نظریه سوم داد روی این قسمتش نمیشه چیکار کرد نظریه سوم داد این یک مثال مثالی دیگه رو میاره برای توضیح همین مسئله اختلفت الصحابه ايضا فی ادت الحامل المتوفى عن ها زوجها فقال فريق منهم انها تعتد بوضع الحمل وقال فريق آخر، تعتد بأبعد الأجلين الأشهر أو وضع الحمل فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذا القولين هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل فإحداث قول ثالث باحتساب الإدة بالأشهر قبل وضع الحمل قول لا يصح لخرقه القدر المتفق عليه وخرق الإجماء لا يجوز. مثال ديقير <تصفيق> وعلى دي توزيه شمي میگه صحابه اختلاف کردن همچنین در اده زنی که حامله هست و شوهرش فوت کرده اگه زنی حامله هست و شوهرش کار میکنن؟ فوت میکنه در مورد ادهش صحابه با هم دیگه چه دارند اختلاف نظر دارند. ببینید من شما رو توصیه میکنم شما یک کتابی در رابطه با آداب اختلاف بخونید با آداب چی؟ علماء قدیم موقعی که روی مسائل فقهی اختلاف نظر میکردن نه هم دیگر تکفیر میکردن نه تفسیق و نه تبدی ولی این روز خیلی از طلبها خاطر مسائل فقهی دیگران چکار میکنند؟ رحمی آقا شما موقعی که میدونی قول این صحیحتر از قول اون هر کسی باشد باید قول صحیح و چکار میکنی؟ ببزیری ولی این که بیایید دیگرانو هیچ گوره راهبی واره شندهش این اصلا این شیوه سالف نیست. او درین نداره. چی؟ کیو؟ من درم کی؟ ورمه ورمای که هستن. خب. همه چی, خوب برسه چی داره شنیده. خب براسه چیش کار داره؟ اون رو اجتهادینه یعنی زریوی داده تمام شد رفت. میخوای چیکارش کنیم؟ هوشیاری کنیم. هوشیار اس بو که اون چه تکفیر میکنی؟ تکفیر نمیکنی، تکفیر. خب. بحث تکفیر تا نیست. بریم جلوتر اینی خوب بحث دولانیه ما کاریش نداریم صحابه بزرگوار رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیه در مورد اده زری که حامله هست و شوهرش فوت کرده اختلاف نظر کردند. گروهی گفتند که اده بینشینه تا وضع حملش یعنی وضع حمل که شد ادهش چی میشه؟ تمام. تمام میشه و گروهی دیگر گفتند نه به ابعدالعجلیل با چی؟ عبدالعجلین دیگه کدومی که؟ کسی که شوهرش فوت میکنه ادهش چقدره؟ چهار ماه و ده روز عبدالعجلین اینه که ببینید اگر چهار ماه و ده روزش دیرتر بود ادهش چهار ماه و ده روزه اگر وضع حملش دیرتر بود چی؟ دقیق داشته باشید؟ بله برعکس به من منشینه یعنی ماه چار روز یا وضع حمل بله بله پس یا چار روز یا وضع حمل دقت داشته باشید؟ یعنی آقا اگر اومد و قبل از وضع حمل قبل از چار ماه و ده روز اومد و چکار کرد؟ وضع حمل کرد و بابا قبلا مثلا الان ماه مثلا هشتم شه که شوهرش فوت میکنه وو تو کجا ایمان بحث ادّد. این من گروهی دیگر گفتند ادّد میشه به بعد به بهمون دورترین عجل به دورترین چی؟ اجل یا چهار ماه و ده روز یا و حمل کدومش چی چه بود؟ چهار ماه. دیرتر بود بله هر کدوم که دیرتر شد دیگه حالتا فرق میکنه یکی شوهرش ابتدای وضع حمل فوت میکنه یکی بعدن حالت سو در نظر میگیرن. نه خب خب فالقدر المتفق میگه اینجا هم یک اندازه‌ای یک قدر متفق علی وجود داره و اون چی هست بین این دو ذریه و اون این هست که و اون این هست که فقط به ماه اکتفا نشه قبل از وضع حمل یعنی چی؟ یعنی آقا اگر زنی حامله بود چهار ماه و ده روزش تمام شد آیا ادهش تمومه؟ نه ادش تموم نمیشه زنی چهار ماه و ده روزش تموم شد ولی هنوز وضع حمل نکرده آیا ادش تموم میشه؟ تموم نمیشه ادش تموم بعد که تموم میشه؟ وضع حمل بله پس میگه نظریه سفومی اینجا دادن قبل از وضع حمل جائز نیست اگر یکی گفت کسی که حامله هست و شوهرش فوت کرده چار ماه و ده روز اشتمام شد اده اشتمام میشه این نظریه نظریه درستی بخالفه با اجماعی بخالفه با چون تا این قسمت اجماع وجود داره تا این قسمت چی وجود داره اجماع بله. چون اینجا قدر متفق علیه شکسته و برخلاف اجماع و جائز نیست خب اینجا اختلاف کردن پس ببینید توضیح صافی بهش بدم تا شما متوجه بشید گروهی گفت به محض این که وضع حمل شد زن ادشتی میشه ولی گروه دیگر گفتن نه اگر یک ماه بعد بعد از وفات شوهرش وضع حمل کرد دیگه اینجا ادش تموم نشده باید صحابه کنه چار ماه و ده روز اما اگر چهار ماه و ده روزش تموم شد ولی هنوز وضع حمل نکرده بود اینجا دیگه عده هنوز تموم نشده اینو تمام صحابه گفتن پس این اندازه که قبل از وضع حمل عدش تموم نشده قبل از چی؟ وضع حمل عده تموم نشده این بین هر دو گروه صحابه چی بود؟ متفق علیه بود پس نظریه سومی که یکی بیاد نه اگر وازع حمل نشده چار ماه و ده روز تمام شدند بازم عده تمام شده این نظریه نظریه درستی نیست این نظریه برخلاف چی است اجماع است پس این نظریه سوم نظریه راضیی بود که استاد